جلسه 40م آموزش علیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب محمد و اهل بیت الله له با تأکید بر خدای متعال و به گرامی و اهل بیت اطهار علیکم السلام بحثمون رو در ادامه بحث قواعد مهم آغاز بکنم خب ما در این قسمت قبل فرص کردیم که قاعده فرعی عنوان تقدیم همبر مهم رو ما میتوانیم لحاظ بکنیم این قاعده از قواعد فرعی مربوط به چی بود؟ مربوط به تزاهم دو مسلحت خلاصه حساب میشه. خب اما در واقع مفهوم محوری در اون مفهوم در واقع مقوله منفعت لحاظ شده است. بنابراین باید می‌دیدیم که این چه نسبتی داره. که در واقع آیا که محتوای این قاعده چی بود و آیا قبول یا قابل قبول نیست خب اگر ما گفتیم مفهومش اعمه این به معنای صرفه این به معنای نفیش نیست در واقع گفتیم که تفاوت داره حالا که تفاوت داره آیا قابل تمسک هم هست یا نیست؟ این یه بحث مستقله در واقع اهم بودن مف... مفهوم مصلحت به معنای نفی مطلق منفعت نیست از این رو اگر خلاصا قبولش بکنیم یا رد بکنیم پذیرش یا انکار این قاعد نیازمند ادله مستقله خب این توابیر در معمولت تو فضای اهل سنت خب خیلی به کار میره وقتی که به کار میره یه میقداری من سر اینا بایستدم که میخوام ارز کنم که به جای تحمله آیا این قاعده قابل پذیرش هست یا نه به نظر میرسه که بستگی به موارد داره اگر در واقع منافع مادی رو کنار بگذاریم منافع مادی رو همه رو در نظر نگیریم به معنا کنار بذاریم اگر بخش مشروع مشروع در میان منافع مادی رو کنار ب... در بخش بخش نامشروع رو کنار بگذاریم اجمالا می توانیم خلاصه می توان این رو مطرح کرد این قاعده رو مد نظر قرار داد و امکان پذیرش اون رو امکان اثبات اون رو خلاصه تمهید کرد اما خلاصه اگر این مقوله رو در نظر نگیریم اون موارد رو از بحث خارج نکنین دشوار میشه خب بر اینجا در نتیجه خل... ما این رو باید در نظر بگیریم اون توجه بین منفعت و مصلحت میتوانه کمک بگیره خلاصه و مورد توجه ما قرار بگیریم یه مسئله بسیار مهمه دیگه که حالا به مقوله مفهوم اون در میگرده عنوان تکمیل اون بحث محتویی میتوانه لحاظ بشه ایندی که این مفهوم یک مفهوم نسبی است نسبی بودن و اضافی بودن منفعت برخی در واقع مفهوم منفعت همونطور که تشکیکی بود همینطور نسبی و اضافی است میتوان نسبت به افراد و بگیم موارد غیر افعال و افعال مختلف متفاوت باشه در واقع تفاوت داشته باشه به این معنا که چی به این معنا که در واقع برای یک امر یک مورد برای فردی منفعت تلقی شود اما برای فرد دیگر خلاصه منفعت نداشته باشه، منفعت آمیز نباشه، بلکه خلاصه زردار تلخی بشه چرا؟ چون که موقعیت افراد متفاوته. طبیعتاً در ما منفعت ما اگر خویم بررسی کنیم باید چکار کنیم؟ این رو لحاظ کنیم در واقع نسبی و اضافی بودن منفعت رو نسبت به افراد مختلف نمیتوان خلاصه لحاظ نکرد این مقوله خاصیه همونطور که مفهوم مصلحت چی بود؟ تشکیکی بود اون تشکیکی بودن هم خلاصه سر جای خودش اه، خب اه، یک محتوای مستقلی است که کمک میکنه ما دقیقاً بفهمیم ذات این مقوله چیز چگونه است خب اون هم یه بحث مستقل ماهیت تشکیکی منفعت و همینطور زرر و مصلحت خب، حالا این مصباق ما باید میدیدیم که منفعت چگونه است این مسئلاتا می توان منفعت هم تشکیکی باشه اون باید تحصیلش رو دید پس تا اینجا ما یک مروری کردیم بر محتوا و مفاهیم این بقوله اما حالا اثبات این و نفی این طبیعتاً این راه رو بعد باز کن ما یک معیار بدیم ولی بعد بخوایم ببینیم سراغ روایات و آیات شریفه ببینیم دقیقاً چه مسأله از این قابل قبوله به طور طبیعی در مقام جنببندی است کردیم که اون موارد نامش رو از منافع مادی رو بذاریم کنار اگر اون موارد رو بذاریم کنار یه مقداری پذیرش شواهدتر میشه چرا چون که اونجا در واقع به اون همسانی نزدیک میشه در این صورت در واقع منافع مادی مشروع می توانند در زمره مساله قرار بگیرند در زمره مساله تلاقی شوند در نتیجه خلاصه می توان صحبت از امومیت تقدیم خلاصه انفع بر غیر انفع رو من تره کرد اما با باز در این حال اون نکته کلیدی سر جای خودشه که منفعت انفع آیا واجب است بر غیر انفع مقدم بشه خسنش سر جای خودشه خب اون حس رو ما نادیده نمیگیریم اما وجوبش چی بستگی داره یه جایی ممکنه شاربه که این نفت داره اونم انفهه اما ضرورتی نبیرنه برای ترجیح بگه ترجیح امکان داره شما الان در ملک کارهای ش... مربوط به ملک خودتون این هم یه مقولهیه که وقتی ملک شماست بگید اون بهتره اینجا ما باید ببینیم جیم اگر بخوایم بریم سراغ عالمصبحوط آیا ضرورتی وجود داره یا نه بعضی جا ممکنه جعلش این مسلح متعلق ضروری باشه. اما تقدیم هر هر مسلحتی ضرورت نداره ممکنه مانع در جل داشته باشه ببینید این یه بحث آمیه کلن در بحث فقه مسئله و مفاسد باید در نظر بگیریم ما یه مقدار در دام تلقی های سنی نیفتیم که تا یک مسلحتی دیدیم بخوایم نتیجه وجوب و لزوم و اینا ازش بگیریم مثلا در اون مورد مسواک زدن حضرت چی میفرماید میفرماید که اگر بر مردم مشق قطعی ایجاد نمی‌شد لا هم به سواک شما از این چی میفهمید لا هم به سواک آیا بدون ضرورت حضرت به چه دلیل امر بکنه خود اندیشیدم از ذرافت داشته باشه ملازمه داره با ضرورت یعنی اینقدر در مثلحت, در مسواک زدن مسلاد هست که من جا داشت امر بکنم امر مال کجا بود مال وجوبه این ظهورش هم استحباب نیست خب میگه لعمر تو هم یعنی واقعا میخواستم امر وجوبی کنم نه استحبابی از این من به نظرم ظهورش در استحباب نیست خب اگر این گونه باشه شاره باید جعلش میکرد باید قبولش میکرد چرا وجوب به نحوه وجوب امر نکرده میگه قدر مشق... در هم به وجود میامد پس صرف وجود مثله هد به معنای ایجاب نیست مختزی ایجاب هست زمین ساز هست اما مستلزم و لزوم نیست اختزا داره مختزی هست اما مستلزم نیست ضرورت رو پوی پو سرش نداره چرا؟ چونگه مانع داره در واقع اون به خودی خود میشه این ضرورت ایجاب میکنه ولی در مجبور ایجاب سرجمی حاصل نمیشه خب یه مقوله جدیه که ما این رو چگونه تصویر کنیم خب پس این هم یک مقوله ما میتوانیم از سیغه های تعبیری مختلفی هم برای این استفاده کنیم بگیم که مثلا این اختزاء شگونه است این استلزام اختزاء یا این تقدیم هم بر مهم واجب نیست برال در فضای سنی این تعبیر رو به کار بردن پس این هم میتوان خودش به مصابیه جور قاعده تلقی بشه خب این, این نکتر مطرح شده بود که اگه منفعت روما جور دیگه معنی کنیم نسبت مساوی میشه و این مفهوم که عرض شد که این مقوله رو ما نسبی بگیریم چون این زمینه رو ایجاد میکنه، اما نسبی بودن گذشته وانه کار خرابی نیست، ایجا. اون نسبیت معرفتی که نیست نسبی بودن یعنی معرفت برای یکی مثلا نسبی باشه یکی زردر باشه. حالا نصفیه علمات بعضی جا با تسامو هم میگیم عدم و نفر ما ممکنه ضرر حساب کنیم اون یه وحث دیگه است حالا اون دیگه خیلی تحبیره در واقع عدبیه از زاویه وحث ادبیه ما الان کار نداریم در واقع این نسبی بودن اون یه معقوله دیگه بود اما در واقع گاه عدم نفر به مصابه چی حساب میشه؟ ضرر تلقی میشه. حالا ما بحثمون خلاصه خارج از اینه. در واقع این مورد از بحث حاضر خلاصه دوره. در بحث واز مورد توجه ما نیست. اما ما اون نصبی بودن اضافی بودن و به بناید این که نسبت به یک فرد اگه بخواییم در نظر بگیریم چگونه است؟ بعضی موارد هم چه مساقه همین مقبوله داره اشاره میکنه گاه عدم نفت به مساقه زرن تلقی میشه و در واقع نسبی بودن منفعت میتوانه از این جهت خلاصه لحاظ بشه اما این از بحث ما خارجه پس اونجایی که شما منفعت جور دیگه کنیم نسبت مساوی میشه یه جوری به نسبی بودن من خلیصه احساس میکنم برمیگرده مگر اینکه مراد شما چیز دیگه یاده در مجموع ما الان دومال چی بودیم این قادمی با اعظم و نفعاً بر اقل و نفعا میتوانه مقدم بشه این فیل جمله قابل قبوله خب این نکته رو هم بگیم که سیاق تعبیری مختلفی هم میتوانه برای این مقبول ما خلیصه دکار ببریم مشابه اما بحث ما رو خلاصه خیلی خراب نمی کنه های می توانه مثلا بگیم قاعده تقدیم و اکثر و نفعن. این دیگه اعظم و اکثر و اینها خلاصه خیلی تفاوت نمیکنه. خب این هم پس یه تحبیری قاعده فرعی دیگه بگیم موارد دیگه هم ما اینجا داریم اه مثلا اه بگیم قاعده دیگه مثلا بگیم همین جا این تعبیرم اعرض کنیم که تمام نشه مثلا اکثیر از اکثر و نفعن و اعظم و نفعن و اکبر و نفعن و در واقع خب حالا اونجا ما اکبر رو جلو آوردیم جلسه قبل اما اگر مثلا کسی بیا بگه اکبر و نفعن به جایی بر نمیخوره اه ولی اه یه جایی ممکنه مراد متفاوت باشه اکثر و اعظم مثلا اکثر میتوانه خلاصه متمایز باشه این مفهوم مثلا اعظم و نفعن میتوانه خلاصه به یک فرد بیشتر بخوره امیدتاً ناظر به منفعت خلاصه متوجه به یک نفره اما این مفهوم اکثریت میتوانه با تعدد افراد هم سازگاری داشته باشه درسته اون اعزبان توش تکسر نبود ولی این یکی چیه اکثر سازگاری میتوانه داشته باشه اگر بگیم اکبر نفر این هم یه مقداری شبیه و قبلیه این هم یه مقداری کنن هم خلاصه میتوانه با, افرا... با یک نفر بیشتر به این میخوره اما اکثر و نفر میتوان با این باشه که مثلا به تعداد بیشتر برسه در این زورت خلاصه به چه معنی خواهد بود اکثر و یعنی این که به افراد بیشتری خلاصه برسه نه به یک نفر. به رسیدن و انتفاع افراد متعدد خواهد بود این در این صورت این خودش یه بحث مستقل میتوانه باشه بهتره که اون رو به عنوان قاعده فرعی مستقلی خلاصه بشناسیم و این رو به این معنای اعظم و اکبر نگیریم این رو قبلا یه موردی داشتیم فکر میکنم که به تعداد در اون پای آقای سوسو برد. اون بحث قبلی داشتیم اکبر و شاید بخشیم این اکثر شبیه اون میشه تعبیر اکبر هم یه مقداری رو اون میتوانه نزدیک باشه خب اینم یه لسان دیگه پایده دیگه اگر تعبیر دیگه رو هم بخواد در نظر بکنیم که معمولا در فضای اهل سنت زیاد به کار میده. یکی طوری میگن که مثلا یوزخ و مصلحت آرزو قبل منقطع من اجل مساله دائمه مصلحت آرژی بر مصلحت این بخو مقدم بشه از این الان ما باید ببینیم که آیا این قاعده مستقلیس یا نه این هم میتوانه در واقع یک قاعده مستقل محسوب بشه ما اولا بحث ما سر مقایسه دوتا مسلحت در واقع قاعده حق دیم مسلحت چی مسلحت دائم بر مسلحت غیر دائم پس هر دو شد چی؟ این در واقع دو تا مصلحتان حال تاویر مختلفی هم به کار میره براش از اصل ماجره تقدیم مصلحته دائمی بر مسلحت چی؟ موقت خب این یه سیاق هم داره مثل چی مثلا اینکه که این برعکسو میگه به جایی که میگه این مقدم بشه میگه که اون یکی خلاصه جره نکشه قربانی بشه 11 ها المصلحت ال اورزه اول منقطع من اجل المصلحه دائمه یه تعبیر دیگه انقیت المصلحه یا تلقی المصلحه طارئه تسلیح المصلحه دائمه اب طویلت المدا خب مفهوم در واقع سی... سیغه چیه محتوی قاعده چیه اینی که ما یه سری مسائل داریم که دائمی هست یه سری مسئله در واقع این قاعده در تمایز زمانی و در واقع استمرار تضییری خلاصه در واقع این مصلحت نظر داره این نمیگه نوعش چیه خب این اما بعضی از این سیرت تعریمی یه مقدار جداست میگه مصلحت عارضه عقل خب این مفهومی اونده دیگه متقابل شد در واقع مفهوم مساله آرزی می متمایز از مساله منقطع و غیر دائمی باشد در واقع مفهوم آرزی با غیر دائمی بودند به نوعی دارای ملازمه تلقی شده است اما چیه؟ اما ماهیتا متفاوتن اینا یکی نیستن خوب. ماهیت متفاوتی دارند. ما با تسامو با این برخورد میکنیم در واقع نوعی تساموه تعبیری در این مورد میتوانه بلیسته مورد توجه قرار بگیره اما اگر واقعا بخوایم بپردازیم این رو ممکنه اصلا به صورت مستقل مد نظر قرار بدیم این مسئله که تاره خب در واقع یه سری مساله مساله ذاتیه با مسلحت تاره بودن یه حرف دیگه است. آیا اون رو باید جدا بگیم یه, م... یه چیزی مسلحتش از خودشه از خودش مسلحت می جوشه این یه حرفه یه جای مسلحت نه آرز شده برش هم یا بی مسلحته یا مقصده داره حالا یه مسلحتی پیدا کرده اون می توانه مثلا شما بگید که مصلحت ذاتی رو و مسلحت آرزی بگذاریم خلاصه جلو هم این رو ما چه کار کنیم این بسه مستقبله ولی فعلا اینجا مقداری میارداریمون بسه انقطاعه اصل میارد در این سیغه تدری این مورده خوب ما اینجا اگر میخوایم به پردازیم یک سوال اینه که آیا این واجبه یا نه آیا این حسن داره یا نه؟ طبیعتاً اگر شما میخواهید مسلحت رو یه جوری کم زیادش بکنید بگید این مسلحته چونکه یه جوری دوام داره این دوام رو نشانه بیشتر بودن بگیرید دوام مسلحت میتوانه حاکی از در واقع اولا ماهیت کمی داره در واقع معیار در واقع مقایسه بین مسلحت دائمی و غیر دائمی متکی به متکی بر مقایسه کمی است حالا کمیه این در واقع به چی میخوا برگرده؟ آیا خودش الان یک معیار آیا در واقع این معیار معیار است یا به معیار دیگری برمیگرده؟ این یه سوالی پاسخ چیه؟ پاسخ دوام مثلت می از حکای ها از کسرت و کمیت بیشتر مصلحت باشه در این, صورت پس در این صورت ما با یه نوع از کمیت رو کار داریم پس در نتیجه در راقه می توانیم بگیم این معیار اصال نسبت به در واقع معیار کمیت و کسرت اصالت نداره بلکه صرفا نشانه چیه نشانه کسرت است. و به اون طریقیت داره به تعبیر دیگه در نتیجه اگر اینجوره بگیریم در بر اساس این فرض بر اساس بازگرداندن این معیار به کسرت عددی به کسرت و کمیت در واقع اصالت رو از این معیار گرفتیم خلاصه ظرف زمانی و میزان استمرار زمانی موضوعیت ندارد و طریقیت به کمیت مصلحت دارد بل. بل اگه اینطور باشه پس این قاعده قاعده مستقلی نخواهد بود ارزم تمام الحمدلله رب العالمین.